مرده های و جونم های متحرک داخل یک خود دو مخره گفتو بشین فارس بگیر خوب دافه میکنه روشنه تری کی صبح اوف کاپوتم اوف تو اون نه تو فقط باش رو فترو به خواستنا دورم دیگه اصلا دل خوشی میکشم استبدان خودکشی نمیشه کسی اون گنجو شیره وا جفته وا زهن خون نشی آخر بکش خورم کلاته خف خب خط کشی رو روی هلصف بهترمی نشو سوت روی بوسمون خونه ها شد قفص تابود او بود با ما با اصر تاغوت ندشتی گه اصلا رای چوره فامی سمت دو زخته یه غن ناشاره ها قلدیر کد غذاوت رزی نبود بزور کد رضایه گفت عمر خور کشیدم زهج روی خوشک خشک ندیدم عبر گفت آخر ما کری تختم اصلا کری هم همثال ما آفریدش دارم است دو می واته وای بوخه به شوری از سرش فقط دو فقط و د موفزوت سرش سمه شوت فغدات شوت زغزه فقط فراتو بشتونخ بهو گرفت کله مده وریری شوت و همه چی به گوم رهی گفت بیشک گودیم نفس سوخته نوشته سر نوشته با خط کنه گلو و کشنده شوت با تک ارگو طلبونه شوت با جیک و همین بوده روزی زیستان همین همین روز زیستان همین شورد مانیق به فرانس نیستن اما از خوب پلیدی برو طرف فکر نوب کلیوی این جی اصلا فدو تو نمچلا کس شرط روی دو تو نمیزنه این جی دیگه اخر دوستونه امید با خالق و اسمانه همونوی که کرده بودند دین افزار به خلوب کشتن کی این نابود نبود میشن همه تک به تک تخص پست میدن همه رک برن تو رکورد سوست